کتاب قصه ها و افسانه های مردم روسیه جلد اول نویسنده آرتور رنسام مترجم فرحناز عامری جلد دوم نوشته لیویندام مترجم بیتا ابراهیمی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیم علی گلزاده داستان ایواشکو و زن جادوگر توی یه روستایی که نه دور بود و نه نزدیک نه بالا و نه پایین زن و شوهری زندگی میکردند که یه پسر کوچیکی داشتن اسم پسرشون هم بود، ایواشکو. اونها اینقدر این پسر رو دوست داشتن که بهش به ندرت اجازه میدادند که از نظرشون دور بشه، چون می ترسیدن که یه دونه پسرشون آسیبی بهش وارد بشه. یه روز ایواشکو به پدر و مادرش میگه، من دوست دارم به ماهیگیری برم. فکر می کنم در دریاجه وسط جنگل خیلی ماهی هست مادر. می تونم چند تایی هم برای شما بگیرم. پدرش فریاد زد. تو چی فکر کردی؟ هنوز خیلی کچکتر از اونی که تنها به جنگل بری. همه جور حیوان وحشی و زنهای جادو و... مادرش از فکر چنین خطراتی رنگش پرید و گفت به علاوه ممکنه که توی دریاچه بیفتی و غرق بشی پسرم اما ایواشکو التماس و پا کرد دیق زد و گریه کرد فریاد کشید بالاخره پدرش از تنه یه درخت تنومند قایق کوچیکی براش درست کرد و از ترکه بید یک قلاب ماهیگیری هم براش تهیه کرد مادرش هم یه پیراهن سفید تنش پوشند و یه شال قرمز هم به کمرش بست پدر و مادر با هم ایواشکو رو از میون جنگل گذروندند و به کنار رودخونه بردند اونو بوسیدند و براش دعا کردند ایواشکو سوار قایق کوچیکش شد و پدر و مادر قایق را به آب انداختند و به خونشون برگشتند در اون وقت بود که ایواشکو فهمید پدرش فراموش کرده براش پارو بسازه با خودش گفت بالاخره یه کاری میکنم و شروع کرد به آواز خوندن قایق کوچک قایق کوچک کمی برو جلوتر قایق کوچک قایق کوچک کمی برو تونتر و قایق حرکت کرد. ای مشغول ماهیگیری شد و ماهیهاش رو تو قایق انداخت. کمی که گذشت مادر پیرش لنگان لنگان خودش رو به کنار دریاچه رسوند و پسرش رو با یه آوایی زیبا و دلنشین صدا کرد. ای باشگو ای باشگو پسر عزیزم برگرد به ساحل برات خوردنی آوردم برات نوشیدنی آوردم. ایواشگو صداشو شنید و گفت، قایق کوچک، قایق کوچک برگرد به ساحل، این صدای مادرمه که منو صدا میکنه. و قایق به سمت ساحل دریاچه راه افتاد. مادرش به او خوردنی و نوشیدنی داد و ماه هایی را که پسرک سید کرده بود رو ازش گرفت. بعد قایق رو دوباره به درون آب هل داد و، به خونه برگشت ایواشکو دوباره شروع به خواندن کرد قایق کوچک قایق کوچک کمی برو جلوتر قایق کوچک قایق کوچک کمی برو تانتر و دوباره شروع کرد به ماهی گرفتن کمی که گذشت پدر پیرش لنگان لنگان خودش رو به کنار دریاچه رسوند و پسرش رو با آوایی زیبا و دلنشین صدا کرد ایواشکو ایواشکو پسر عزیزم برگرد به ساحل برات خوردنی آوردم برات نوشیدنی آوردم و ایواشکو گفت قایق کوچک قایق کوچک برگرد به ساحل این صدای پدرمه که منو صدا میکنه و قایق به ساحل برگشت پدر ایواشکو ماهی هایی را که او سید کرده بود گرفت و به او خوردنی و نوشیدنی داد و قایق کوچک را دوباره به آب انداخت و به خونه برگشت. و اما یک زن جادوگر که اسمش لیودا یتکا بود صدای مادر ایواشکو را شنید. او که کنجکاف شده بود با عجله به ساحل دریاچه اومد و از میون بوتهها به دقت نگاه کرد و ایواشکو رو دید که آروم در قایق کوچیکش در وسط دریاچه نشسته بود. عجب پسر سرخ و سفیدی بود. آب از دهن زشت لیودایتکار کار را افتاد چون او جادوگر آدمخور بود. چقدر دلش میخواست این غذای خوشمزه رو به چنگ بیاره. به ساحل نزدیکتر شد و با صدای زشت و زمختش فریاد کشید ای باشکو ای باشکو پسر عزیزم برگرد به ساحل برات خوردنی آوردم برات نوشیدنی آوردم ای باشکو چنان ترسید که نزدیک بود از قایق بیرون بیفته این صدای پدرش نبود مطمئنا صدای مادرش هم نبود این صدای وحشتناک شبیه ارعر فقط میتونه صدای یک جادوگر باشه ایواشکو طوری وانمود کرد که انگار چیزی نشنید و آروم خوندش قایق کوچک قایق کوچک کمی برو جلوتر قایق کوچک قایق کوچک کمی برو تونتر این نه صدای پدر است و نه صدای مادر این هست صدای یک جادوگر و من باید بشوم از او دورتر نه جادوگر که عصبانی شده بود تو دلش گفت این بچه لوس رو نمیشه راحت گول زد دفعه بعد با صدای شبیه صدای مادرش فریاد میکشم اون وقتی که اون به ساحل میاد دندونای آهنیش رو به هم فشرد تناپی را که به دور شکم گرسنه‌اش بسته بود محکم کرد و با عجله به سراغ آهنگر روستا رفت. با صدای سوهان مانندش به آهنگر گفت: کوزنتره آهنگر، برام یه جعبی صدا بساز که صداش به نرمی دلنشینی صدای مادر ایواشکو باشه، وگرنه می‌خورمت. آهنگر که از ترس می لرزید فوراً یک جعبه صدا برای جادوگر ساخت و وقتی اون رو امتحان کرد دیدن که صداش درست شبیه صدای مادر ایواشکوه لیودا یتکا با به کنار دریاچه برگشت جعبه صدا رو بالا گرفت در اون گفت ایواشکو ایواشکو پسر عزیزم برگرد به ساحل برات خوردنی آوردم، برات نوشیدنی آوردم. ایواشکو با خودش گفت، این دیگه صدای مادر عزیزمه. او با قایق کوچیک حرف زد و قایق هم با حرف شنوی به طرف ساحل رفت. لیودایتکا کا از میون بوته بیرون پرید و پسر رو با یه دست و ماهی هایی که گرفته بود با دست دیگه قاپید. و شلنگ انداز به درون جنگل دوید هرچقدر ایواشکو با مشت و لگت اونو زد نتونست مشتش رو باز کنه لیودایتکا وقتی به کلبه خرابش رسید با لگد درو باز کرد ماهی ها رو به گربه لاغر و مردنیش داد و پسر رو در قفصی آهنی انداخت و بعد با نعری تنها دخترش رو صدا زد آلنکا آلنکا بودو از راه رسید دقیقاً شبیه مادر زشتش بود بله مامان آها نهار آلنکا با صدای جیغ جیغین حرفا رو زد و مشغول سیخ زدن و نیشگون گرفتن ایواش کشاد جادوگر فریاد کشید بازی بسه اجاق رو روشن کن دختر احمق تنور رو حسابی داغ کن. این بچه نونو رو برام کباب کن تا من برم چند از دوستامو برای غذا دعوت کنم. چشمای شیطونی آلنکا وقتی داشت از مادرش رو اجرا می برق میزد. اجاق داغ و داغتر می شد. وقتی آلنکا در آهنی اجاق رو باز کرد گرما بیرون زد. آلنکا در حالی که سعی می کرد ایواشکو رو از قپس بیرون بکشه گفت وقتش رسیده بچه کوچولو بیا بیرون، بشین روی این خاکانداز تا بتونم تو رو راحت بذارم توی آجاق. ایواشکو که از ترس، عقل از سرش پریده بود، از تهمونده عقلی که پرش مونده بود استفاده کرد. خودش رو به گیجی زد و گفت، خاکانداز؟ من تا حالا روی خاکانداز ننشستم. میشه نشونم بدید چطور این کار رو بکنم؟ آلنکا گفت کاری نداره خیلی زود یاد میگیری بیا تو نگهش دار تا من یادت بدم و به محض اینکه آلنکا روی خاک انداز نشست ایواشکه اونو بلند کرد و توی اجاق انداخت در آهنی اجاق را هم بست و بعد از کلبه بیرون دوید و در کلبه رو گفت کرد و کلید رو هم دور انداخت اون وقت با عجله از درخت بلوط بزرگ کنار کلبه بالا رفت. در همون لحظه زن جادوگر در راه برگشت به خونه بود. ای صدای قاهقای خنده اونو که با مهموناش از میون جنگل میومدند میشنید. وقتی این جمعیت زشت رو از راه رسیدند، لیودایتکا در رو فشار داد و فهمید که در قفله با مشت و لکت به در می و بر سر دخترش فریاد می اما هیچ جوابی شنیده نمیشد. شد. فریاد کشید. ای تمبله به درد نخور. حتما رفته پیش شیطنت در همون لحظه بلوطی از درختی که ایواش گروش بود پایین افتاد و به سر جادوگر خورد. جادوگر نره کشید. آلنکا الان وقت بازی نیست من بوی گوشت کباب شده رو حس می کنم همین حالا بیا پایین این رو گفت و به بالا نگاه کرد اما به جای دخترش ایواشکو را دید که به بالاترین شاخه های درخت چسبیده لیوت با نره وحشتناک چرخی زد و به سمت در حمله برد صدای بلندی اومد و در به تکه های چوب تبدیل شد. جادوگر دوید تا توی اجاق رو نگاه کنه. فریاد کشید. آای و دیوانوار به بیرون دوید. خودش رو به سمت درخت بلوت پرت کرد و شروع کرد به گاز گرفتن تنه درخت. تقریبا نیمی از تنه درخت را جویده بود که دوتا از دندونای آهنیش صدایی کردند و شکستند جادوگر رو به میموناش فریاد کشید نذارید فرار کنه و به سمت روستا دوید وقتی به اونجا رسید به سراغ آهنگر رفت و گفت کوزنتره آهنگر برام دندونای آهنی درست کن اگه نکنی می‌خورمت آهنگر هم دو تا دندون آهنی در کوره درست کرد و اونها رو با چککش توی فک جادوگر فرو کرد و جادوگر دوباره به سرعت دوید تا درخت بلوت رو به جایه ایواشکو در طله افتاده بود او به آسمون نگاه کرد و دید که دسته ای از غازها و غوها نزدیک میشن ایواشکو دستاشو ملتمه سانه بلند کرد و خوند آه گازهای عزیز آه غوهای عزیز بلندم کنید با بالهای پرواز من رو ببرید به خونه پدرم همونجا که هست منتظر مادرم اما غازها قوها انگار صدای اونو نشنیدند جادوگر جبنده مثل اره درخت رو میبرید و درخت بلوت کم کم صدا می کرد و تاب میخورد. دیگه چیزی نمونده بود که روی زمین بیفته ایواشکو چشمهاشو بست و دعا کرد وقتی چشمهاشو باز کرد هنوز گله غازها و قوها داشتن پرواز میکردند و از کنار او میگذشتند. ناگهان یک قوی سفید بزرگ به سرعت پایین آمد و یه راست به سمت ایواشکو پرواز کرد پسر گردن را گرفت و خودش را به پشت پرنده به محض اینکه ایواشکو سوار بر قور شد، درخت بلوط بزرگ با صدای بلند روی سر جادوگر افتاد. درخت جادوگر را له کرده بود. همینطور طور همه دوستاشو. قوی بزرگ در تمام طول شب ایواشکو را برد و برد. وقتی خورشید طلو کرد پسر به پایین نگاه کرد و دریاچه رو دید و قایق کوچک خودش را دید که روی آب شناوره یکی قایق رو به یک درخت قان بسته بود بعد به خونه پدر ایواشکو رسیدند او آروم پایین اومد و روی سقف کاهگلی خونه نشست ایواشکو از پشت قو به پایین سرخ خورد، پیش از اون که بتونه از پرنده مهربون تشکر کنه، پرنده به هوا پرید و رفت تا خودش رو به دسته پرنده ها برسونه. ایواشکو بوی صفحونه به مشامش خورد که داشت حاضر می و صدای گریه و ناله از داخل خونه شنیده میشد. مادرش حقق کنان می گفت چه اتفاقی برای پسر عزیزمون افتاده؟ کوی من کجاست؟ ایواشکو صدای پدرش رو شنید که می گفت آرون باش آرون باش شاید پسرک رفته کمی بگرده تو که میدونی پسر بچه ها مادر گفت خب حالا بشین صبحانتو بخور من کلوچه پختم گرچه عشق نمیذاشت که خوب کلوچه ها را ببینم این مال توه این یکی مال من این مال تو این مال من ای ایواشکو خودش رو به لبه پشت بام رسوند و پرید پایین و به داخل خونه دوید و فریاد زد پس من چی؟ به من نمیرسه؟ پدر و مادرش پریدن و اونو در آغوش گرفتند و بوسیدند و خندیدند و گریه کردند. بعد مادرش بهش غذا داد و اونو در آغوش گرفت و بوسید و خندید و گریه کرد و بعد از اون ایواشکو تونست همه ماجرا رو براشون تعریف کنه. اون گفت و حالا که جادوگر مرد و دیگه نمیتونه فریبم بده من میخوام برگردم سراغ ماهی گیریم و همین کار رو کرد سفر به دنیای پر رمز و راز ها. هایی از غول ها و کتوله ها از جادوگر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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسان داستان صوتی